ژن خودخواه نوشته ی ریچارد داکینز فصل یادهم میم همتااز جدید تا اینجا درباره انسان زیاد صحبت نکردم گرچه آن را به هم کنار نگذاشتم دلیل استفاده از اصطلاح ماشین بقاه تا حدی این بوده است که در ذهن بعضی ها واژه حیوان هی گیاه و گاهی انسان را شامل می شود استدلال هایی که من مطرح کردم در وهله اول باید در مورد هر موجود تکامل یافته ای کاربرد داشته باشد. اگر قرار باشد گونه ای مستثنان شود، باید دلیل خاصی وجود داشته باشد. آیا برای منحصر به فرد بودن گونه ما دلیل خاصی وجود دارد؟ من فکر می کنم پاسخ این سوال آری است. بیشتر آنچه را که انسان را از دیگر جانداران متمایز می کند، می توان در یک کلمه خلاصه کرد. فرهنگ، من این واژه را نه در معنای تشریفاتی آن، بلکه به صورتی به کار می که یک دانشمند از آن استفاده می کند. گرچه انتقال فرهنگ در اصل محافظ کارانه است، اما از آن نظر که نوعی تکامل ایجاد می کند، با انتقال ژنی قابل قیاس است. جفری چاسر و یک انگلیسی امروزی نمیتوانند به راحتی با هم گفتگو کنند با این که رشته محکمی از 20 نسل مردان انگلیسی آنها را به هم پیوند میدهد که هر کدام توانستند با همسایه مجاور خود در آن زنجیره مثل پدر و پسر صحبت کنند به نظر میرسد زبان با ابزاری غیر ژنی و با سرعت بسیار بیشتر از تکامل ژن تکامل می‌یابد انتقال فرهنگ مخصوص انسان نیست. بهترین نمونه غیرانسانی آن را که من می‌شناسم، اخیراً بیفی جنکینز در آواز پرنده‌ای به نام پشت زمینی که در جزایر اطراف زلند نو زندگی می کند توصیف کرده است. در جزیره‌ای که او کار می‌کرد، در کل حدوداً 9 آواز مشخص از یکدیگر وجود داشت. هر پرنده نر یک یا چند تا از آن آوازها را میخواند. نرها رو میشد از روی لحجهشان دسته کرد برای مثال یک گروه هشتایی از نرها که قلمروشان کنار هم بود آواز خاصی را می که سیسی نامیده شده بود. گروه های لحجه دیگر آوازهای دیگری می گاهی اعضای یک گروه لحجه ای در بیش از یک آواز شریک بودند. با مقایسه آوازهای پدران و پسران، جینکینز نشان داد اینطور نیست که طرح آوازها از طریق ژن به ارث برسد. به همان صورتی که در یادگیری زبان در انسان رخ می دهد هر نر جوانی ممکن است آوازی را از همسایه قلم رو به خود تقلید کند. در بیشتر زمانی که جنکینز آنجا بود در جزیره تعداد معینی آواز شنیده میشد. گویی نوعی خزانه آواز وجود داشت، که نرهای جوان مخزن خود را از آن پر می کردند. اما گاهی او این امکان را داشت که شاید اختراع یک آواز جدید باشد آوازی که با اشتباه در تقلید از یک آواز قدیمی پیدا می شد جنکز نوشته است معلوم شده از صورت های جدید آواز به شکلهایی مختلف از تغییر زیر و بمی یک نوت حذف بعضی نوت ها و ترکیب بخش هایی از آواز های موجود پیدا می شوند پیدا شدن صورت جدید یک رخداد فل بود و حاصل کار تا چندین سال برقرار می ماند به علاوه در برخی موارد فقط آن صورت جدید به نست جوان منتقل می به طوری که یک گروه منسجم و یک دست از افرادی که مثل هم می پیدا می شد به خواستگاه آوازهای جدید با عنوان جاهش فرهنگی اشاره می کند آواز پرنده پشت زمینی واقعا از طریق غیر ژنی تکامل می آورد. نمونه های دیگری از تکامل فرهنگی در پرندگان و میمون ها وجود دارد. اما اینها جزء موارد عجیب و غیرمعمولند. معمولنده. این گونه ماست که به واقع توان تکامل فرهنگی را به نمایش می گذارد. زبان تنها مشتی از خروار است. مدل لباس طرز غذا خوردن، رزم ها و سنت ها، هنر و معماری، مهندسی و فناوری همه در زمان تاریخی طوری تکامل پیدا می کند که به نظر می رسد صورتی از تکامل ژنیاند که شتاب زیادتری دارند اما در واقع ربطی به تکامل ژنی ندارند گرچه این تغییر هم ممکن است مثل تکامل جنی تدریجی باشد علم جدید به مفهومی عملا بهتر از علم قدیم است با گذشت قرنها نه در که ما از جهان تغییر می کند بلکه بهتر نیز می شود باید پذیرفت پذیرفت پیش پیشرفتهای امروزی ریشه در دوره نوزایی رنسانس دارد دوره‌ای که بعد از تاریکی رکودی بود که در آن فرهنگ علمی اروپا در سطحی که یونانیان با آن رسیده بودند منجمد شده بود اما همونطور که در فصل پنجم دیدیم تکامل ژنی هم ممکن است به صورت یک رشته از فوران‌های کوتاه مدت که در بین وضعیت‌های ثابت قرار دارند رخ دهد اغلب به مقایسه بین تکامل جنی و تکامل فرهنگی اشاره کردن و گاهی در بعضی متون این اشاره های کاملاً کاملا بی اساسن. قیاس بین پیشرفت علمی و تکامل جنی از طریق انتخاب طبیعی را به ویژه سر کارل پوپر روشن کرده است. من بیشتر در جهتی پیش می که ال ال کاوالی اسفرزا متخصص ژنتیک فیت کلوک مردم شناس و جمیم کولن رفتار شناس برده بررسی قرار دادن. توضیحی که همعقیده های من برای رفتار انسانی ارائه کردند مرا که یک داروینی پر حرارتم قانه نکرده است. آنها کشیدن ان در ویژگی های مختلف تمدن انسانی در پی یافتن امتیازات زیست شناختی باشند. برای مثال آین قبیلهای ای را سازوکاری برای قوام بخشیدن به هویت گروه در نظر می که برای گونه ای که به صورت جمعی به شکار می رود و و آن افراد با تکی بر همکاری با هم تومه بزرگ و را شکار می ارزشمند است. اغلب پیش زمینه فکری که از تکامل وجود دارد بر پایی نظریه است که ریشه در انتخاب گروه دارند اما میتوان این نظریه ها را چون باز گفت که بر پایه انتخاب ژنی بنیانگذارا قرار گیرند شاید وقشر بخش امده از این چند میلیون سال آخر را در گروه های کوچک خیشاوندی گذرنده باشد انتخاب خیشاوند و انتخاب به نفع ایسارگری دو جانبه ممکن است روی ژن انسان تأثیری گذاشته باشد که سبب بسیاری از ویژگی ها و تمایلات روانی بنیادی ما شده باشد این پیشنهادها تا حدی پذیرفتنی است اما بعید میدانم که از پس دشواری توضیح فرهنگ تکامل فرهنگی و تفاوت بسیار زیادی برایم که بین قبیله های انسان در جهان وجود دارد از خودخواهی و بیاحساسی قبیله ایک در اوگاندا آنطرکه کولینترمبول شهر داده گرفته تا ایسارگری ملایم های مارگارت مید من فکر می کنم ما باید از اول شروع کنیم و سراغ اصل نخست برویم بحثی را که پی خواهم گرفت و شاید از نویسنده فست های ابتدای این کتاب بعید به نظر برسد. این است که برای درک پیدایش انسان امروزی لازم است این فکر را که ژن تنها بنیان باور ما درباره تکامل باشد از سر خود درک کنیم. من یک داروینی پروپاگورس هستم اما معتقدم این نظریه بزرگتر از آن است که فقط محدود به قالب باریک ژن باشد. ژن فقط برای قیاس در نظریه من آمده است نه برای چیزی بیش از آن خب، بالاخره جنها چه فیژگی خاصی دارند؟ پاسخ این است که آنها همتا سازند. انتظار ما از قوانین فیزیکین است که در همه جای دنیا صادق باشند اما آیا هیچ اصل زیست شناختی وجود دارد که به این صورت اعتبار جهانی داشته باشد؟ وقتی فضانووردان به سیارات دور سفر می کنند و به جستجوی که علایم حیات می میتوانند می انتظار یافتن موجودات بسیار غریبی را داشته باشند که تصورش هم برای ما زمینی ها آسان نیست. اما آیا چیزی در مورد حیات نیست که در هر جا و با هر بنیان شیمیایی که یافت شود صادق باشد؟ اگر صورتی از حیات یافت شود، که پایه شیمیایی آن به جای کربون بر سیلیکون باشد یا به جای آب بر آمونیاک اگر موجوداتی کش شوند که در منهای درجه تا حد مرگ بجوشند، اگر صورتی از حیات یافت شود که اصلا بنیان شیمیایی نداشته باشد بلکه بر پایه مدارهای منعکس شونده الکترونیکی باشد آیا باز یک اصل کلی وجود دارد که ناظر بر کل حیات باشد روشن است که من پاسخ را نمیدانم، اما اگر مجبور بودم شرط ببندم، آن وقت روی یک اصل بنیادی سرمایه گذاری می کردم و آن این قانون بود که تفاوت میزان بقای موجودات همتاساز کل حیات را پدید می ژن یا ملکول DNA ای موجود همتاسازی است که به طور اتفاقی در سیاره ما فراگیر شده است ممکن است انواع دیگر آن هم وجود داشته باشد. اگر چنین باشد، آن آنها اگر بعضی شرایط ویژه دیگری هم فراهم باشد، بی تردید توانند پایه یک فرایند تکاملی شوند. آیا ما مجبوریم به دنیاهای دور برویم تا انواع همتاسازها ها و در پیامد آن انواع دیگر تکامل را بیابیم؟ به باور من اخیراً نوع جدیدی از همتاساز روی سیاری ما پیدا شده است و چشم در چشم ما دوخته است. این همتاساز هنوز دوران توفولیت خود را می‌گذراند. هنوز با خام دستی در سوپ آغازین قوتور است. اما تغییرات تکاملی آن با سرعتی که دارد ژن قدیمی را هنوهن پشت سر گذاشته است و پیش می روید. این سوپ جدید سوپ فرهنگ بشری است. ما برای این همتاساز جدید اسمی لازم داریم. اسمی که واحد انتقال فرهنگ یا واحد سرمشق گیری را القا کند واژه میمم از یک ریشه یونانی مرتبط گرفته شده اما من واژه ای میخواهم که تا حدی بر وزن جن باشد امیدوارم دوستان ادیبم مرا ببخشند که میمم را کوتاه کرده به صورت میم در میآورم شاید اگر آن را از خانودی مموری در نظر بگیریم حافظه یا به واژه فرانسوی مم یعنی همان نسبت دهیم خیال ما کمی راحت می شود. از نظر تلفظ، بر وزن کریم است. نمونه میم عبارتند از آهنگ باورها، تکی کلام ها، مدهای لباس، شیوه های سفالگری و ساخته، هلال تا درست هموندر که ژن با پریدن از یک بدن به بدن دیگر از طریق اسفرمی و تخمک خود را در خزانی ژنی پخش می کند. میم ها با پریدن از یک مغز به مغز دیگر خود را در خزانه میمی تکثیر می که در مفهوم کلی می آن را سرمشق گیری نامید. اگر دانشمندی از موضوع جالبی با خبر شود یا چیزی بخواند، آن را به همکاران و دانشجویان خود منتقل می کند. از آن در مقاله و سخنرانی های صحبت می کند. اگر آن موضوع مورد توجه قرار گیرد، میگوییم خود را از مغزی به مغز دیگر منتشر کرده است. همکار من نون کاف همفری پیشنویس قبلی این فصل را چنین خلاصه کرده بود. میم را باید مثل یک موجود زنده در نظر گرفت. نه فقط نظر استعاری بلکه به لحاظ فنی. وقتی شما یک میم بارور را در ذهن من میکارید، در واقع چیزی وارد میکنید که آن را به وسیله‌ای برای انتشار آن میم تبدیل میکند. درست به همان صورت که یک ویروس ممکن است وارد سازوکار ژنی سلول میزبان شود و این فقط در حد حرف نیست برای مثال میم باور به حیات پس از مرگ در جهان بیش از میلیون ها بار به صورت یک ساختار در دستگاه عصبی افراد محقق شده است مفهوم آفرینش را در نظر بیاورید نمیدانیم چگونه در خزانه میمی پیدا شده است شاید اصلا چندین بار با جهش های جداگانه پیدا شده باشد در اصورت قدمت آن واقعا بسیار زیاد است. این میم چگونه همتاسازی کرده است؟ به صورت گفتاری و نوشتاری واژه به کمک موسیقی والا و هنر ارزشمند. چرا چنین میزان بقای بالایی دارد؟ یادتان باشد در اینجا منظور از میزان بقا میزان جن در خزانه جنی نیست بلکه میزان مم در خزانه میمیست. نظر بعضی از همکاران من این است که این برداشت از میزان بقای یک میم آن را مسلم می انگارد. آنها همیشه میخواهند در آخرین مرحله تحلیل به امتیازات نتایج زیستی برگردند. از نظر آنها گفتن اینکه مفهومی از نظر روانی گیرایی ای دارد کافی نیست. میخواهند علت این گیرایی بسیار زیاد روانی را بدانند. گیرایی روانشناختی دارد یعنی برای مغز جالب است مغزم با انتخاب طبیعی ژنها از خزانه ژنی شکل گرفته است آنها میخواهند دریابند چگونه داشتن چنین مغزی به بقای ژنها کمک میکند من این نگرش را درک میکنم و شک ندارم داشتن این مغزی که ما داریم از نظر ژنی امتیازاتی دارد با وجود این فکر میکنم اگر این همکارانم با دقت بیشتر به اصول بنیادی فرضی های خود توجه کنند میبینند که دارند همان تعداد سؤالهای مرا مطرح میکنند در اصل به این دلیل که ها همتا سازند یک روش خوب برای توضیح دادن پدیدههای زیست شناختی مطرح کردن امتیازات ژنی آنهاست وقتی در سوپ آغازین شرایط طوری شد که مولکولها توانستند هایی از خودشان بسازند خود زمام امور را به دست گرفتند در زمانی بیش از سه هزار میلیون سال DNA ای تنها تنها همتاساز مطرح در جهان بوده است که ارزش داشته راجب آن صحبت کنیم اما لزومی ندارد این انحصار تا ابد برقرار باشد وقتی شرایطی به وجود می آید که در آن نوع جدیدی از همتاساز نسخه هایی از خودش می سازد، زمام امور به دست این همتاساز جدید می و نوع جدیدی از تکامل را که خاص خودش است، بنا می گذارد. زمانی که این تکامل جدید شروع شود، به هیچ صورت لازم نیست در خدمت همتاساز قبلی باشد. تکامل قبلی که بر اساس انتخاب ژن بود، با ساختن مغز سوپی ساخت که در آن نخستین ها پیدا شدند وقتی های همتاساز پیدا شدند تکاملی که خاص آنها بود سرعت گرفت مازی شناسان چنان غرق در مفهوم تکامل ژنی شده ایم که اغلب فراموش میکنیم تکامل ژنی فقط یکی از انواع ممکن تکامل میتواند باشد در یک مفهوم کلی تقلید همان همتاسازی میم‌ها است اما چون اینطور نیست که هر جنی توانه همتازازی دارد در این کار موفق باشد به همین ترتیب بازده بعضی میم ها در خزانه میمی بهتر از بقیه است و این قابل قیاس با انتخاب طبیعی است. من چند نمونه از ویژگی هایی را که باعث بیشتر شدن میزان بقای میم ها میشود ذکر کردم. اما در واقع آنها باید همون ویژگی هایی باشند که در فست دوم برای همتاسازها بیان کردیم. ماندگاری زایایی و امانت در نسخه برداری ظاهرا برای هر نسخه از میم ماندگاری آن اهمیتی را ندارد که برای یک نسخه از جن داشت نسخه‌ای که از یک سرود در ذهن من است فقط تا پایان و عمر من ماندگار خواهد بود و بعید است که از نسخه‌ای که در کتاب سرود دانش آموزان پیشاهنگ وجود دارد بیشتر دوام بیاورد اما تصور من این است که نسخه هایی از آن سرود روی کاغذ یا در مغز مردم تا قرنهای آینده زنده خواهد ماند مثل مورد ژن زایایی یک نسخه خیلی مهمتر از مندگاری آن است. اگر میم یک نظر علمی باشد، پراکنش آن بسته به این است که تا چه حد برای تکتک دانشمندان قابل پذیرش باشد. یک سنجش تقریبی از میزان بقای آن را شاید بتوان با شمارش تعداد دفعاتی که در شماره متوالی متبالی علمی به آن ارجاع داده شده است به دست آورد. اگر میم یک آهنگ محبوب باشد، میزان پخش آن در خزانه میمی را باید از روی تعداد دفعاتی که شنیده شده و افراد جمعیت اهل آن میم آن را در خیابان سود زده اند حساب کرد. اگر یک مدل کفش زنانه باشد کسانی که اهل آن میمند ممکن است از روی آمار فروش آن در مغازه‌ها حساب دستشان بیاید. بعضی ها مثل بعضی ژنها به موفقیت‌های درخشان کوتاه مدت دست می‌یابند و سریع پخش می‌شوند اما در خزانه میمی دوام چندانی ندارند. آهنگای محبوب و های پاشنه بلند نمونه‌ای آنند. بعضی دیگر مثل بعضی قوانین ممکن است تا هزاران سال به انتشار ادامه دهند این اغلب به خاطر پایداری بلقوه است که ثبت نوشتاری دارد و میرسیم به سومین ویژگی کلی همتاسازهای موفق امانت در نسخه برداری باید اعتراف کنم در اینجا جای پای محکمی ندارم در نگاه اول به نظر نمی رسد. اصلا از نظر کیفیت امانت همتاسازهای خوبی باشند هر وقت دانشبند نظری را میشنود وان را به کسی دیگر منتقل می کند احتمالا تا حدی آن را تغییر می من دینی را که به نظرهای ریل تریورز دارم در این کتاب پنهان نگه داشتم. با وجود این آنها را عینا با کلمات خودش در اینجا نیاورده با تغییر تأکید و آمیختن با نظرهای خودم و نظر افراد دیگر آنها را طوری آوردم که مناسب مطلب مورد نظرم باشد میمها ها به شکل تغییریافته یافته به شما منتقل می شوند و این درست عکس انتقال است که در آن دقت بالاست و صحبت از انتقال همه یا هیچ است به نظر می رسد که انتقال میم هم مدام در معرض جهش است و هم در معرض آمیختگی ممکن است چون میم بهظاهر غیر ضرره ای است ما گمراه شویم. ما آن را قابل قیاس با ژن ندانیم. در کل، اگر با آنچه از خصوصیت ژنی به اسم رسد مثل قد یا رنگ پوست انسان توجه کنیم به نظر نمیرسد اثر ژن غیرقابل تقسیم و غیر آمیختگی باشد. اگر یک آدم سفید پوست و یک آدم سیاه آمیزش کنند فرزند آنها سیاه سیاه، یا سفیده سفید سفید نمیشود چیزی بین است این معنایش این نیست که ژنهای مربوطه ذرههای مجزا هستند بلکه به این معنی است که تعداد بسیاری از آنها به رنگ پوست مربوط میشوند و تأثیر کدام به قدری کوچک است که در مجموع به نظر میرسد با هم آمیخته شدهاند تا اینجا دوری از میم صحبت شد که گویی واضح است که یک واحد میم از چه تشکیل شده است این قذیه به این روشنی هم نیست گفتیم هر آهنگ یک میم است اما سمفونی چطور چندتا تا میم است آیا هر موومان یعنی حرکت یا هر عبارت قابل تشخیص ترانه آن یک میم است هر میزان هر آکور یا چه من باز به همان کلک زبانی که در فست سوم به کار بردم متوصل می‌شوم در آنجا ژن مرکب را به واحدهای کوچک و بزرگ ژنی و به واحدهای درون هر واحد تقسیم کردم تعریف ژن یک چیز ثابت نبود که فقط همان باشد و غیر از نباشد بلکه واحدی بود برای راحت کردن کار. مقداری از طول کروموزوم بود که برای اینکه واهد قابل قبولی در انتخاب طبیعی محسوب شود باید از نظر امانت در نسخه برداری کیفیت بالایی داشت. اگر تنها یک عبارت از سمفونی نهم بتوون به قدر کافی مشخص و قابل به یاد سپردن باشد که بشود آن را جدا از سمفونی به عنوان یک نشانه آوایی در یک ایستگاه فرستنده رادیو به کار برد آن وقت این شایستگی را دارد که آن را یک میم به حساب آوریم اتفاقا همین موضوع توانایی ما برای لذت بردن از سمفونی کور کرده است به طریق مشابه وقتی میگویم امروز همه زیست‌شناسا نظریه داروین را قبول دارند منظور ما این نیست که هر هرکدمشان یک نسخه از نوشتههای خود داروین را کلمه به کلمه در مغز خود حک کرده است هر کس به روش خاص خود نظر داروین را تفسیر کند. شاید آن را نه از روی نوشتههای خود داروین بلکه از نویسندهایی جدیدتر گرفته باشد بسیاری از جزیات آن چیزها که داروین شرح داده نادرست است اگر خود داروین کتابش را میخواند به زحمت نظریه اصلی خودش را در آن پیدا میکرد هرچند من امیدوارم از آن دوری که من آن را توضیح می دهم خوشش می آمد. با این حال علا رقم همه اینها یک چیز هست یک جوهر داروینی که در ذهن همه افرادی که آن نظریه را درک می کنند وجود دارد اگر غیر از این بود آن وقت این حرف که دو نفر در مورد جمعه اتفاق نظر دارند تقریبا بیمعنی می نمود یک میم مفهومی را میتوان توان به صورت چیزی قابل انتقال از یک ذهن به ذهن دیگر تعریف کرد. بنابراین میم نظریه داروین پایه اصلی مفهومی است که در ذهن همه آنهایی که این نظریه را فهمیدهاند وجود دارد. پس تفاوت تفسیر افراد از آن بخشی از آن میم به حساب میآید. اگر بشود نظریه داروین را به چند بخش تقسیم کرد به طوری که بعضی افراد قسمت ای را قبول داشته باشند و قسمت بی را نپذیرند و ای دیگر بی را قبول کرده باشند و ای را نپذیرند آن وقت باید ای و بی را میمهای جداگانه در نظر گرفت اگر هر کس ای را قبول داشته باشد و تقریبا بی را هم پذیرفته باشد به زبان ژنی، یعنی اگر میمهای به هم پیوسته باشند آنگاه راحت تر است که آنها را یک پارچه با هم در نظر بگیریم و یک میم قلمداد کنیم. بیایید قیاس ژن و میم را پی بگیریم. در سرتاسر سر این کتاب تاکید من بر این بود که نباید جنها را عاملی هدفمند و حشیار در نظر آوریم. انتخاب طبیعی بدون هدف آنها را در جهتی میراند که جهتدار به نظر میرسد و مثل یک جور توند نویسی ما از آنها هدفمندی را برداشت میکنیم. مثلا وقتی میگوییم جنها سعی میکنند شمار خود را در خزانه ژنی افزایش دهند در واقع منظور این است جنهایی که رفتارشان به است که در آینده در خزانه جنی پرشمار میشوند ژنهایی خواهند بود که اثرشان را در جهان خواهیم دید درست همونطور که برای ما راحت تر بود جنها را عامل هدفمندی قلمداد کنیم که در جهت بقای خود میکوشند شاید راحت باشد که میم را هم همینطور در نظر بگیریم. در مورد هیچ کدام نباید خود را به تصورات بسپاریم. در هر دو مورد از هدف فقط به طور استعاری استفاده می و تا اینجا دیدیم که در مورد جنها این استفاده به درد خور بود. حتی از واجه های مثل خودخواه و بیرم در مورد جنها استفاده کردیم. گرچه کاملا می که در واقع داریم با کلمات بازی می‌کنیم. آیا می توانیم در همان حال و هوا دنبال میمهای های خودخواه یا بیرحم بگردیم؟ در اینجا در مورد سرشت رقابت به مشکلی برمیخوریم. در جایی که تولید مثل جنسی است هر ژن با آلل خود در رقابت است. رقابت بر سر جایگاهی در کروموزوم تصور من این است که در یک مفهوم خورد می توان گفت بسیاری از آرا زدههایی دارند. اما در کل میم ها شبیه ملکول های همتاساز اولیه اند که آزاد و بی‌نظم در سوپ آغازین قوته می خورند. به جای اینکه مثل ژن امروزی در رشته ای دوگانه دوگان مرتب و منظم در جای خود نشسته باشم. پس منظور از رقابت میم ها چیست؟ در صورتی که از آلل خبری نباشد، آیا می شود تصور کرد که آنها هم خودخواه یا بیرحم باشند؟ بله ممکن است زیر آنها در نوعی رقابت با یکدیگر درگیرند هر کاربر کامپیوتر دیجیتالی میداند که فضای زخیر سازی حافظه و زمان چقدر با ارزش است در بسیاری از مراکز بزرگ کامپیوتر اینها را با ارزش پولی آن سنجند یا ممکن است به هر کاربر بخشی از زمان را که بر حسب ثانیه اندازگیری می شود و سهمی از فضا را که بر حسب واژه اندازگیری می شود اختصاص دهند. کامپیوتری که میم ها دران زندگی می مغز بشر است. احتمالاً زمان عامل محدود کننده مهمتری از فضای زخیر باشد و رقابت بر آن بیشتر باشد. مغز انسان و بدنی که در کنترل مغز است نمی نمیتواند در آن واحد بیش از یکی دو سه کار با هم انجام دهد. اگر قرار باشد میمی توجه مغز آدم را بیشتر به خود جلب کند. باید از پس میمهای رقیب برآید امکانات دیگری که میمها بر سر آن رقابت دارند وقت رادیو تلویزیون و فضای تابلوهای تبلیغاتی ستون روزنامه و فضای قفصی کتابخانه هاست. ها در مورد جنها در فصل سوم دیدیم که ممکن است مجموعه‌های همساز در خزانه ژنی پیدا شود. مجموعه بزرگی از جنهاهای مربوط به تقلید در ها که روی یک کروموزوم به هم پیوسته اند، انقدر به هم نزدیک شده اند که می‌شود آنها را یک ژن در نظر گرفت. در فصل پنجم ما به مفهوم پیچیدهتر گروه‌هایی از نه ژن که از نظر تکاملی پایدارند برخوردیم. در خزانه جنی گوشخاران دندانها، چنگها، ام آوحشا و اعضای حسی متقابلن با هم جفت و جور اند. در حالی که در خزانه جنی گیاهخاران مجموعه پایداری شامل یک رشته ویژگی دیگر پیدا شده است. آیا در خزانه میمی هم چنین وضعیتی وجود دارد؟ آیا مثلا میم سازنده باید به میمه های دیگر پیوسته باشد؟ تا که این با هم بودن به بقای همه آنها کمک کرده باشد شاید بتوان یک کلیسای بسامان با معماری، مراسم، قوانین، موسیقی، هنر و سنت های نوشتاریش را یک مجموعه پایدار از میمهای متقابلا همساز در نظر گرفت برای مثال یک جنبه از تعالیمی که در رعایت اصول ایمانی بسیار تأثیر گذار بوده تهدید آتش دوزخ است. بسیاری از کودکان و حتی بعضی بزرگسالان به خاطر ترس از عذاب وحشتناک بعد از مرگ از دستور کشیش اطاعت می کنند این یک شیوه عجیب و ترسناک ولی بسیار مؤثر است. شاید یک کشیش ماکیاولی آموزش دیده در روشهای مؤثر روانشناسی شستشوی مغزی آگاهی‌ی چنین برنامهای را تدارک دیده باشد. اما من بعید می کشیشی تا آن حد باهوش بوده باشد. به احتمال زیادتر میمه های بقای خود را به وسیله همان ویژگی های ظاهرن که جنهای موفق به نمایش می‌گذارند گذارم تزوین می کنند. این تصور با میمه سازنده پیوند خورده است زیرا این یک دیگر را تقویت و به بقای یک دیگر در خزانه میمی کمک می کنند. یک عضو دیگر این مجموعه ایمان نام دارد که معنای آن اعتقاد چشم بسته است در آنجا که شاهدی وجود ندارد یا حتی علارغم وجود شاهد داستان تومای شکاک را برای این نگفتن که او را تحسین کنیم خواستند که در مقایسه با او حواریون دیگر را تحسین کنیم توماس گواه و دلیل میطلبد برای بعضی میم خاص هیچ چیز محلکتر از اشتیاق به پیدا کردن علت و دلیل نیست. حواریون دیگر که با ایمان محکم خود در پی جستن دلیل نبودند، با عنوان سرمشخ معرفی می شوند. میم اعتقاد چشم بسته جاودانگی خود را با ترفند سادهی منع کردن پرسش های اقلانی تضمین می کند. اعتقاد کرکرانه همه چیز را توجیح می کند. اگر کسی معبود دیگری داشته باشد اگر از آینهای متفاوتی برای پرستش استفاده کند اعتقاد کورکورانه او را به مرگ محکوم می‌کند روی صلیب روی چوبه دار سیخ کشیده به شمشیر یک جنگجوی صلیبی با تیر در یکی از خیابانهای بیروت یا با انفجار در کافه‌ای در بلفاست این از حاصل اعتقاد کورکورانه چه می هم بر و سیاسی باشد چه آینی احتمالاً ژن و میم همدیگر را تقویت می‌کنند اما گاهی هم در مقابل هم قرار می‌گیرند برای مثال احتمالاً میل به زندگی مجردی نباید درسی باشد در خزانی ژنی ژن جن بی همسری محکوم به فناست، مگر در شرایط استستایی که مثلا در مورد حشرات اجتماعی دیدیم با این حال میم بی همسری ممکن است در خزانی میمی موفق باشد برای مثال، فرض کنید موفقیت یک میم بسته به مقدار زمانی باشد که مردم صرف انتقال آن به یکدیگر می کنند. هر فرصتی که صرف کاری غیر از انتقال آن میم شود، از نظر آن میم وقت تلف شده است. کشیش میمهای تجرد را به پسرهای جوانی که هنوز تصمیمی برای آینده خود اند منتقل می کند. انسان به روش مختلف دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد از راه سخن گفتن، نوشتم یا سرمشق زنده بودن و مانند اینها. فرض کنید وضعیت چنین بود که ازدواج قدرت نفوذ کشیش بر مردم را کم میکرد. مثلا به خاطر این که باید توجه و وقت زیادی را به امور مربوط به آن اختصاص می میداد. در واقع به همین یک دلیل رسمی است که بی همسری در میان کشیش ها اجباری شده است. اگر قضیه به این صورت می بود نتیجه میشد که میم بی همسری ارزش بقای بیشتری از میم ازدواج داشته باشد البته در مورد ژن بی همسری کاملا عکس این حالت صادق است اگر قرار است کشیش ماشین بقای میم باشد بهتر است که میم درونسرشتی تجرد را داشته باشد در مجموعه بزرگ میم های درون یک دینگ یکدیگر را تقویت می‌کنند تجرد میم پیش پا افتاده و ضعیفی است. حسما این است که مجموعه های میمی همساز مانند مجموعه های جنی همساز تکامل می‌یابند. انتخاب طبیعی به نفع میم‌های عمل میکند که از محیط فرهنگیشان به نفع خود استفاده کنند. این محیط فرهنگی شامل میمهای منتخب دیگر هم میشود. بنابراین خزانه میمی ویژگی‌های یک مجموعه از نظر تکاملی پایدار را پیدا می کند طوری که برای میم‌های نو نابود کردن آن آسان نیست درباره این میم کمی منفی بافی کردم ولی به آن روی جالب آن هم می‌رسیم وقتی ما می‌میریم دو چیز از ما باقی میماند: ژن و میم ما ماشین‌هایی هستیم که برای انتقال جن ها پدید آمده ایم ولی این جنبه ما بعد از سن هست به فراموشی سپرده می شود. بچه‌ای یا حتی نوه ممکن است هایی به ما داشته باشد مثلا از نظر سیمای چهره، از نظر استعداد موسیقی، رنگ مو اما با گذشت هر نسل سهم ژنی ما نصف می شود. زیاد طول نمی کشد که آن سهم دیگر به حساب نمی آید. ممکن است ژن‌های ما همیشه زنده باشند. اما آن مجموعه ای از جنها که هر یک از ما میسازد محکوم به فناست الزابت دوم از زادگان ویلیام فاتح است. با وجود این به احتمال زیاد حتی یک ژن آن شاه قدیمی نیست. در تولید مثل نباید در طلب نامیرایی باشیم ولی اگر در فرهنگ جهان شریک شویم اگر فکر خوبی داشته باشیم آهنگی بسازیم شمع جرق درست کنیم و شعری بنویسیم شاید مدت ها بعد از محف شدن ژنمان در خزانه ژنی اینها بدون تغییر باقی بمانند شاید امروز از ژنهای سقرات بیش از یک یا دو تا زنده باشد ولی به قول جی سی ویلیامز چه اهمیتی دارد؟ مجموعه میمی سقرات، لئوناردو کوپرنیک و مارکونی هنوز پابرجه هرقدر تکفین نظریه میمهای من بر مبنای حس و گمان باشد، میخواهم یک بار دیگر بر یک دکتر جدی تأکید ببرسم. و آن این است که وقتی ما به تکامل ویژگی های فرهنگی و به میزان بقای آنها توجه میکنیم، باید روشن باشد صحبت از بقای چیست. همونطور که دیدیم، زیزچناسات طبق عادت در پی یافتن برتری در سطح ژن، یا افراد، یا گروه ها، یا گونه ها بسته به سلیخه هستند. آنچه قبلا مورد توجه قرار نداده بودیم این است که ممکن است یک ویژگی فرهنگی فقط به این دلیل تکامل یافته باشد کشیده ای که دارد برایش مقرون به صرفه بوده است. ما نباید دنبال ارزش بقای زیستی چیزهایی مثل سنت، موسیقی و رقصهای آینی به مفهوم متعارف آن باشیم. گرچه آن هم احتمالاً وجود دارد وقتی ژنها برای ماشین بقایی خود مغز را هم تدارک دیدند که میتواند به سرعت شبیهسازی کند خود به خود میمها جلو افتادند. حتی لازم نیست ما امتیازات ژنی برای تقلید در نظر بگیریم گرچه بیشک آن هم تاثیر نیست تنها چیز لازم این است که مغز توانایی تقلید داشته باشد آنگاه میمها خود به خود طوری تکامل مییابند که تمام و کمال از آن بهره گیرند. اکنون به بحث این همتا ساز جدید خاتمه می دهیم و این فصل را با موضوع امیدوار ای به پایان می رسانیم. یک ویژگی منحصر به فرد انسان که ممکن است میمی باشد یا نباشد قابلیت آینده نگری آگاهانه اوست. جنهای خودخوا و اگر شما حدسیات این فصل را مجاز بدانید میمها ها هیچ آینده نگری ندارند. آنها همتا ساز بی هدف و نابینایند ویژگی همتاسازی آنهاست که همراه با بعضی شرایط دیگر آنها را در جهتی از تکامل پیش میبرد که در این کتاب خاص نام خودخواهی بر آن گذاشته ایم. این کاملا خارج از کنترل آنهاست، از یک همتا ساز ساده، چه جن باشد چه میم نمیشود انتظار داشت که از منافع کتاه مدت خود صرف نظر کند حتی اگر این کار در دراز مدت برایش گران تمام شود ما این موضوع را در فصل پنجم که درباره تهاجم بود دیدیم با اینکه تبانی کبوترها برای تک تک افراد بهتر از آن راه برد از نظر تکاملی پایدار بود ولی انتخاب طبیعی بدون چونه چرا آن راه برد از نظر تکاملی پایدار یعنی ESS را ترجیح میداد. ممکن است یک ویژگی منحصر به فرد دیگر انسان قابلیت ایسارگری صادقانه، بیریا و واقعی او باشد من این را آرزو می کنم، ولی نمی خواهم در موردش بحث کنم و در مورد تکامل میمی آن به گمان زنی متوسط شوم. نکته مورد نظرم در اینجا این است که حتی اگر به روی تاریک آن نگاه کنیم و بنا را بر این بگذاریم که افراد بشر اساسا خودخواهند آینده نگری آگاهانه ما قابلیتی که آینده را در ذهن ما مجسم می کند می تواند به ما کمک کند تا خود را از شرط خودخواهی های این همتاسازهای های کور حفظ کنیم ما دست کم می توانیم با این تجهیزات ذهنی که داریم به جای اینکه فقط در فکر منافع خودخواهانه کوتاه مدت خود باشیم، منافع خودخواهانه دراز مدت من را در اولویت قرار دهیم. ما در توانی کبوترها نفع شراکت دراز مدت را میبینیم و میتوانیم دوره هم بنشینیم و در باری راه انداختن چنین نقشه هایی تبادل نظر کنیم. در ما این توان هست که در برابر جنهای خودخواهی که با آنها به دنیا آمده و در صورت لزوم در مقابل میم های خودهایی که مغز ما را شستشو میدهند بیستیم. حتی میتوانیم در مورد راه پروراندن ایسارگری ناب و بیغرز چیزی که در طبیعت جایی ندارد، چیزی که هرگز در تمام تاریخ جهان وجود نداشته، صحبت کنیم. ما همچون ماشین ژن ساخته شده و مانند ماشین میم فرهنگی شده ایم. اما این توان در ما هست که در برابر سازندگان سازندگانمان قیام کنیم. در تمام زمین تنها این ما ایم که می توانیم در مقابل این هم خود این همتاز سازان خودخا بایستیم.